اصل هشتام صبح بود اما فقط به آن نشان که گراسیم رفت و پیوتر آمد و شمه ها را خاموش کرد و یک پرده را کنار زد و بی صدا به مرتب کردن اتاق پرداخت از این که بگذری خواه صبح بود خا شب و جمعه بود یا یک شنبه ابدا تفاوتی نداشت همه همان درد جانسوز بود که اندرون او را می جوید و یک لحظه آرام نمی شد و نیز آگاهی به این که جان پیوسته و بی امید به بازگشت از کالبدش بیرون می رفت اما اجاق زندگیش هنوز کاملا سرد نشده بود پیوسته همان افریت هولنگیز و منفور مرگ بود که به او نزدیک می و تنها واقعیت مسلم بود و پیوسته همان دروغ که اطرافش را گرفته بود در چنین هفته ها و روز ها و ساعت های روز کجا برایش اهمیتی داشتند؟ پیوتر گفت چای میل ندارید؟ یوانیلش و خود گفت او فقط میخواد نظم کارش برقرار باشد و نظم کارش ایجاب میکند که خانوم آقایش صبحا چای بخورند گفت نه پیوتر گفت میل ندارید روی کارا ببرید؟ ایوانیدیش با خود گفت فقط میخواهد کار خودش را بکند که مرتب کردن اتاق است میخواهد نظافت کند و من مزاحم کارش هستم من برای او کسافت و ازمیم. به خوشگی جواب داد نه راحتم بگذار که همچنان اندکی در اتاق پلکید ایوانیدیش دستش را دراز کرد پیوتر از سر خوش خدمتی پیش دبی و پرسید چه فرمایشی دارید؟ ایوانیلیش گفت ساعت پیوتر ساعت را که همانجا درست زیر در سهو بود برداشت و به او داد ایوانیلیش گفت ساعت هشتونیم هست هر روز بلند نشدند پیوتر گفت نه قربان وسیل ایوانویچ پسار ایوانیلیش تشریف برده مدرسه پرسگوفی و فیدروفنا دستور دادند اگر شما کاری داشتید بیدارشان کنم. میفرمایید بیدارشان کنم؟ هیوانیلیش گفت نه، لازم نیست. با خود گفت چطور از کمی چای بنوشم؟ به پیشخدمت گفت خب، چای اطراف بیاور ببینم. پیوتر به سمت در رفت. هیوانیلیش از تنها ماندن وحشت کرد. با خود گفت به چه بحانه میتوانم نگهش دارم؟ آهان دوا گفت یوتر دوایم رابطه و در دل گفت کسی چه میداند؟ شاید هم دواه هنوز کمکی بکند قاشقی برداشت و شربتی را که میبایست خورد همین که شیرینی توابر و آشنا و نومید کنندی شربت را چشید با خود گفت نه هیچ فایده اینه دارد همهش محمل است و گل زنک. نه دیگر هیچ حرفشان را نمی کنم ولی آخر با این درد چه کنم این درد از جان من چه میخواد؟ ای کاش بهقدر یک لحظه آرام میشد شروع کرد به نالیدن پیوتر برگشت ایوان گفت نه برو چای را بیاورد پیوتر رفت. میبانه که تنها ماند به افتاد. نه چندان از درد گرچه دردش تا روا بود. بلکه بیشتر از ملال. همانو، همان و همان. همهش همین روزها و شبهای بینده ها. زودتر تمام می‌شد. خب وقتی تمام شد بچه. بعد مرگست و تاریکی. نه نه هرچی باشد بهتر از مرگ است وقتی پیوتر با یک فنجان چای در سینی بازگشت ایوان ایریچ مدتی دراز مبهوت به او خیره ماند نمیفهمید کیست و چه میخواد. پیوتر از این نگاه او دستپاچه شد آن وقت ایوان لیچ به خود آورد گفت آن چای آوردی خب، خوب بگزارشنجا فقط کمکم کن که دست رویی به شویم و پیرهنه پاک بیاور حیوان شروع به شست شو کرد آهسته با مکس هایی برای استراحت دست و صورت خود را شست و دندانهایش را مسواک زد و موهایش را شانه کرد و در آینه به صورت خود نگریست از دیدن چهره خود وحشت کرد مخصوصا از دیدن موهایش که تخت شده و به پیشانی رنگ اش چسبیده بود وقتی پیرهنش را عوض می کردند می که اگر به تن اوریان خود نگاه کند و شتش بیشتر خواهد شد و نگاه نکرد ولی خوب کارش رست و شو و پوشیدن پیرهنش تمام شد رب شام را پوشید و پتویی به پا پیچید و در صندلی نشست تا چای بنوشد لحظه احساس تازگی کرد اما همین که جرعی چای نوشید همان طعم بد را در دهان باز یافت و همان درد جمسوز به شکمش باز آمد. چای را به زور نوشید و واپس افتاد و پاهایش تا دراز کرد و پیوتر را باز فرستاد. و پیوسته همین بود. گاهی شرار امیدی در دلش میدرخشید و گاهی در جای آشفته ناامیدی بود و مدام درد و درد و مدام اندوه سیاه. جانش را میگزید تنها که میماند سخت افسرده بود و میخواست کسی را صدا کند تا همدمش باشد اما از پیش میدانست که با دیگران حالش از اینکه بود بدتر میشد در دل میگفت ای کاش باز مرفین میزدم و خود را فراموش میکردم به دکتر خواهم گفت که فکری بکند اینجور نمیشود ممکن نیست یک ساعت و دو ساعت به این شکل گذشت صدای زنگ در خانه بلند شد شاید دکتر باشد از غذا دکتر بود شاداب و سرخوش و چاق و چله و و خندان حالت حکایت از این میکرد که میخواهد به شوخی بگوید آن چه شده مثل اینکه پشل پشه لگتتان زده و خیال میکنید فیل بوده ای ندارد من حالا ترتیبش را میدم. دکتر میدانست که این برخورد با مریض که عادتش بود در مورد این بیمار نابجاست. مثل کسی که صبح برای رفتن به دیدن این آن فراک پوشیده و نمیتواند بین راه لباسش را عوض کند. سررااپان نشاد دستهای را به هم میمالید گفت وای چه سرد است؟ یخبندان شدید است سنگ میترکت اجازه بدهید کمی گرم شوم. و لحنش به حال میمانست که انگاری اگر کمی صبر کنند تا او گرم شود، دیگر جای هیچ قصوی نخواهند داشت. دکتر گفت، خب، حالا حالتان چطور است؟ لحنو طوری بود که بگوید، خب، کاربار چطور است؟ تازه کهنه چه خبر؟ اما مثل ای بود که حتی خودش فهمیده باشد که نباید با این لحن با او حرف بزند گفت شب چطور خبیدید؟ ایواندیش نگاهی به او کرد که معنایش این بود که واقعا شرم نداری که این اینجور دروغ میگویی اما دکتر نخواست که معنای این نگاه را بفهمد ایواندیش جواب داد خیلی بد مثل گذشته بر طرف حتی یک ذره سبک هم نمی شود دکتر گفت شما بیماران همیشه همینطورید. خب حالا انگاری گرم شدم حتی پراسکوی و فیدرونا که مو از ماس می کشند نمی توانند از حرارت بدن من عیبی بگیرند حالا سلام و به او دست داد ان وقت وقت که شوخی را از شهر برداشت و جدی شد و شروع به معاینه بیمار کرد نبز و درجه حرارتش را گرفت و بعد به سینه و پک و پهلویش انگشت کوفت و به صداهای درون او گوش داد حیوان به خوبی و بی هیچ تردید میدانست که اینها همه بیهود گویی و بازیگری و فریب است اما هنگامی که دکتر زانو زد و روی او خم شد و گوشش را روی بدن او بالا و پایین می برد. و با سیمایی بسیار جدی حرکات دبرانی و عجیب و غریب به سر خود میداد که به حرکات ورزشی میمانست ایوان الیچ تسلیم شد همانطور که در گذشته در دادگاه سخنان وکلا را گوش میداد و هیچ نمیگفت گرچه به خوبی میدانست که دریوری میگویند و منظورشان را نیز از آن محملات میدانست همان همانطوری که روی کالاپ زانو زده بود باز شروع کرد به سینه و پهلوی او انگشت کفتن تا خشخش لباس پراسکویوف یدرونا از آستانه در بلند شد و صدای او به گوش رسید که به پیش خدمت اطاب میکرد که چرا آمدن پزشک را به او اطلاع نداده است وارد شد و روی شوهرش را بوسید و بیدرنگ شروع کرد گواه کردن تا ثابت کند که مدتی است بیدار شده است و فقط چون پیشخدمت دستور او را درست نفهمیده و او را خبر نکرده است انگام آمدن پزشک آنجا نبوده است ایوانینیچ او را مینگریست خوب براندازش کرد و نگاهش همه ملامت بود حسد بر سفیدی پوست و چاق و چلگیش و تراوت بازبان و گل و گردنش و برق گیسبان و درخشش چشمانش تا از شور زندگی سرشار بود میوانیدیش در دل نسبت به او جز بیزاری چیزی احساس نمی کرد. همان تماس بدنش چینه او را چنان تیز می کرد که خود از آن رنج می بارد. رابطه پراسکوب یا فیدرونا با شوهرش و بیماری او مثل گذشته بود همانطور که دکتر رفتار خود را نسبت به بیماران با سنجیدگی و حسابگری و عوض ناشدنی معین کرده بود و نمی آن را عوض کند، پراسکوب یا نیز برخورد یگانه و عوض ناشدنی با شوهرش داشت که فهوای آن این بود تو کاری را که می بایست نمی کنی و اگر حالت خوب نمی شود گناه از خود توست و اگر من سرزنشت می کنم برای این است که دوستت دارم رفتارش با شوهرش برای این اساس بود و نمی توانست تغییری آن بدهد. پراسکوی افیدروفنا گفت بله میدانید؟ اصلا حرف گوش نمی کند. دواهای خود را سر وقت معیل نمی خورد. و از آن مهمتر اینکه، که وضع خوابیدانش که پاهایش را بالا می گذارد، نباید برای حاله چندان مساعد باشد. و تعریف کرد که چگونه گراسیم را وادار می کند که پاهایش را بالا می گردارد. دکتر لبخند زد و لبخندش نکایت از تحقیری آمیخته به گذشت و بزرگواری میکرد. منهای این لبخند آن بود که چه میشود کرد؟ این بیمارها گاهی کارها و عداهای ای دارند. عذرشان خواسته است. وقتی معاینه تمام شد دکتر به ساعتش نگاه کرد. آن وقت پراسکوب یا به ایوان ایلیچ اطلاع داد که او آن روز پزشک مشهور را دعوت کرده است تا با میخایل دنیلوویچ این اسم دکتر غیرمشهور بود او را معاینه و با او تبادل نظر کند و به ترنه گفت خواهش میکنم اعتراض نکن من این کار را برای خاطر خودم کردم و با این حرف میخواست بگوید که او در حقیقت همه کار را برای خاطر شوهرش میکرد و این را فقط برای آن میگوید که مجال مخالفت به او ندهد وانیلیچ ساکتمان و اخم درهم کرد احساس میکرد که دروغ و دقلی که او را احاطه کرده است به قدری هم و پیچیده شده است که هیچ کس نمیتواند از آن در آورد در حقیقت پراسکوی و هر کاری که به ظاهر برای شوهرش میکرد فقط به خاطر خود میکرد اما داشتن غلظ شخصی در کاری که میگفت برای خود میکند چنان نامحتمل بود که میبایست وارونه فهمیده شود. ساعت 11 و نیم که شد دکتر مشهور آمد. دوباره معاینه های جورا جوراجور و گفتگوهای فازلانه و پرمعنا در حضور او در اتاق دیگر بحث بر سر کلیه و آپاندیس بود و سوالها و جوابهایی که بسیار پرمعنا بودند و خلاص که باز به جای مسئله اصلی که مرگ و زندگی بود و تنها مسئله‌ای بود که ایوان ایلیش اکنون در برابر خود داشت بحث بر سر کلیه و آپاندیسی بود که وظیفه خود را آنطور که باید انجام نمیدادند و حالا میخائیل دانیلوویچ و دکتر سرشناس بر آنها میتاختند و دمار از روزگارشان درمیآوردند و مجبورشان میکردند که به راه راست بازگردند پزشک مشهور با رفتاری جدی که در امیدواری را گشوده مینمود خدا حافظی کرد و به پرسش ایوان ایلیچ که با چشمانی از برق وحشت و امید درخشان و با کمرویی بر روی او دوخت از او پرسید که آیا امکان بهبودی در می میبیند یا نه جواب داد که البته امکان بهبود منتفی نیست اما او چیزی را تضمین نمی کند نگاه امیدی که ایوان ایریچ بدرقه پزشکان کرد به قدری ترحمانگیز بود که پراسکوویا فیودورونا هنگامی که از اتاق بیرون می تا های مزد دکتر مشهور را بپردازد با دیدن آن به گری افتاد امرندک احساس دلگرمی حاصل از سخنان امیدبخش پزشک در دل ایوان ایریش دراز نشد همچنان همان اتاق بود و همان تصاویر روی دیوارها و همان پرده ها و همان کاغذ های دیوار و همان شیش های دارو و همان تن درد مند از رنج در تاب ایوان الیچ ناله سر داد مرفین به او تزریق کردند و او خود را از یاد برد وقتی به خود آمد تاریک تاریک شد برایش غذا آوردند به زور سوپی خورد و باز همان عذاب بود و محتم شب که فرا می رسید بعد از غذا ساعت هفت بود که پراسگوو یا فیودرونا به اتاق او آمد با سراب از ایچنال آراسته که گفتی به شب نشینی می رود کرستی پوشیده بود که سینه فربهشت فربهش را بالا میداد و به صورتش پودر زده بود همان روز صبح به او گفته بود که شب به تئاتر می روند سرابرنار آمده بود و آنها لژی داشتند که به اصرار خود او گرفته بودند ایوان الیچ این اصرار خود را از یاد برده بود و از آراستگی زنش آزرده شد اما آزردگی خود را پنهان کرد زیرا به یاد آورد که خود اصرار داشته است که به منظور پرورش حس زیباشناسی شناسی و ذوق هنری بچه ها لوشی در تئاتر بگیرند پراسکوفیا فیودرونا به وارد شد و بسیار راضی و خوشحال بود اما وانمود می کرد که وجدانش معذب است کمی بر بالین او نشست و از حالش پرسید ما مویوانیش دریافت که این سؤال زنش برای حفظ ظاهر است و نه برای اینکه به راستی خواسته باشد از حال او باخبر شود. زیرا میدانست که در این زمینه دانستنی چیزی نیست و شروع کرد به آنچرا که می‌خواست بگوید و آن این بود که او بو به هیچ قیمتی حاضر نمی‌بود به تئاتر برود. ولی خب، لوجرانه نمیشد خالی گذاشت و, و الن هم می‌خواست بیاید و دخترشان و پتریشچف همان باز بازپرس جوان که نامزد دخترشان بود هم بودند که میخواستند نمایشنامه را ببینند و نمیشد آنها را تنها فرستاد اما او خود دوستتر داشت که در خانه بماند فقط ایکاش در غیابش در صورت دکتر را مو به مو اجرا كند پراسکوویا فیودورونا گفت فیودور پتروویچ همان نامزد دخترشان و لیزا هم میخواهند بیایند تو اجازه دارند ایوانیلیچ گفت خب بیایند دخترشان وارد شد که لباسی بسیار شیک به تن داشت و قسمتی از تن جوان و شادابش را اورگان گذاشته بود. بله دخترش همان تنی را به نمایش گذاشته بود که سرچشمش درد جانسوز و رنج بسیار برای او بود. ولی دخترش خوشبنیه و تندرست بود و آشکارا آشق و از بیماری و رنج و مرگ که مانع شیرین کامیش بود بیزار. فیودور پتروویچ نیز آمد که فراک پوشیده و محاویسر را فرزده بود و گردن بلند با رگهای برجسته اش را یقهی آهارزده سفیدی میپوشاند. و گریبان پوش سفید فراخی داشت و شلوار تنگ سیاهی ران‌های ورزیده‌اش را غالب کرد و یک دستش در دستکش سفیدی غالب شده بود و کلاه سیلندر سیاهی در آن بود درست پشت سر آنها نوجوان دانش آموز مسکینی بیان که توجه کسی را جلب کند وارد شد که فرم نوی مخصوص دبیرستانیان بتن و دستکشی سفید به دست داشت و دور چشمانش سخت کبود بود و ایوانیدیش علت این کبودی را خوب می دانست. او همیشه نسبت به این پسر احساس تره میکرد و از نگاه ترسال او که نشان از همدردی داشت بیمناک بود. به نظر ایوانیرش از گراسیم که بگذریم فقط همین واسیا بود که به حال او آگاه بود و غم او را در دل داشت. همه نشستند و از حال او پرسیدند. بعد مدتی ساکت ماندند. لیزا از مادرش دوربین تئاتر خواست و میان دختر و مادرش به گو شروع شد که کدام یک آن را کجا گذاشته است و نتیجه تلخی اوقات همه بود. فیودور پتروویش از ایوان ایلیچ پرسید که آیا هرگز بازی سرا را دیده است یا نه؟ و ایوان ایلیچ اول منظور جمال را نفهمید اما بعد آن پی برد و جواب داد نه شما دیدید فیودور پتروویش گفت بله وقتی نقش آدریان لوکوور را بازی می کرد پراسکووی یا گفت که سرا برنار خاصه در چه نقشی فقلاده بوده؟ و دخترش با او مخالف بود بحث بر سر اصالت و زیبایی بازی او و نزدیکی آن به واقعیت شروع شد بحثی که همان مطالب همیشگی در آن تکرار میشد. چشم فیودور پتروویچ ضمن بحث به ایوان الیچ افتاد و فورا ساکت شد دیگران هم به او نگاه کردند و ساکت شدند ایوان الیچ با چشمانی درخشان به جلو خود ماتش برده بود و پیدا بود که از آنها بیزار است ناگذیر بایست این آزردگی جبران شود اما به هیچ روی جبران شدنی نبود لازم بود که سکوت به طریقی شکسته شود اما هیچ کس پیش قدم نمی و همه می که ناگهان جو آدابدانی توخالی به هم بریزد و واقعیت چنان که هست بر همه نمایان گردد لیزا اول کسی بود که جرعت کرد و سکوت را شکست. میخواست را همه احساس میکردند پنهان کند. اما نتوانست و کار را خراب کرد. نگاهی به ساعتش که هدیه پدرش بود انداخت و گفت خب اگه رفتنی هستیم دیگر باید راه بیافتیم. این را که میگفت نگاهی به مرد جوان انداخت و لبخندی نامحسوس اما معنادار زد که معنای آن را جز خودشان دو نفر کسی نمیدانست. و خشخش لباسش شنیده شد همه برخواستند و خداحافظی کردند و رفتند وقتی رفتند ایوان الیچ احساس تسکینی کرد دیگر از دروغ اثری نبود و جاز با آنها رفته بود ولی درد باقی بود پیوسته همان درد بود و همان وحشت که همه چیز را یک نباخت می چنانکه چنان که هیچ چیز سختتر یا آسندر نمیشد فقط همه چیز بدتر بود باز دقیقه در پی هم و ساعز ها در پی هم روان بودند و همه چیز مثل گذشته بود و هیچ پایانی نداشت و پیوسته مرگ ناگزیر در پیش بود و مدام خوفنگیز در میشد. به پرسش پیوتر جواب داد بله گراسین را بفرست بیاید